چهارشنبه ده جولای 2013 صبح فضا داغه. ساعت هشت و نیمه و روز با هوای سنگین و رطوبت از راه رسیده. میتونم یه طوفان آرزو کنم اما آسمون جسورانه خالیه، بیلک، آبی بیحال عرق بالای لبمو خوش میکنم، به خودم میگم کاش یادم باشه یه بطری آب بخرم. امروز صبح نمیتونم جیسون رو جسو ببینم و خیلی ناامیدم از دیدنشون. احمقانه است میدونم. خونه رو به دقت بررسی میکنم اما چیزی برای دیدن نیست. پرده های طبقه پایین باز و درهای فرانسوی بستن. نور روز رو شیش ها باستاب داره. کرکرهای چوبی پشت دری پنجرهای بالا هم بستن. جیسون احتمالا سر کاره. اون دکتره. فکر کنم برای یکی از این سازمان ها کار میکنه. مرتب گوش بزنگه. کیفش همیشه آماده‌ست و به جارختی آویزونه. کافی یه زمین لرزه تو ایران رخ بده یا یه سونامی تو آسیا تا اون همه چی رو ول کنه. کیفش رو به دندون بگیره و خودش رو برسونه فرودگاه. ساعتش رو با ساعت اون کشور هماهنگ کنه و آماده بشه برای پرواز و نجات زندگی ها. جس با اون نقش و نگارای جسورانه و منش معدبانه و اهمیتش به زیبایی شناسی لا تو کار صنعت مده یا شاید تجارت موسیقی یا حتی تو کار چاپ ممکنه یه طرح صنعتی یا یه عکاس باشه اون یه نقاش خوبه و خیلی استعداد هنری داره من حالا میتونم اون رو تو اتاق اضافی بالا ببینم با صدای موسیقی پنجره باز با یه قلمو تو دستش و یه بوم بزرگ تکیه داده به دیوار تا نیمه شب اونجا میمونه. جیسون میدونه وقتی اون کار میکنه نباید مزاحمش بشه. البته من واقعا نمیتونم اونو ببینم. نمیدونم که اون نقاشه یا اینکه صدای خنده جیسون بلند یا جس گونه های زیبایی داره. من ترکیب صورتش رو از اینجا نمیتونم ببینم. هرگز صدای جیسون هم نشنیدم. من هرگز اونو رو از نزدیک ندیدم. وقتی من پایین این جات زندگی میکردم تو این خونه زندگی نمیکردن دو سال قبل بعد از اینکه اینجا رو ترک کردم اونا اومدن دقیقا نمیدونم که به نظرم حدود یه سال پیش بود که کم کم توجه به اونا جلب شد و رفته رفته انگار ماه گذشت و اونا برای من مهم شدن حتی اسماشونم نمیدونم برای همین خودم براشون اسم انتخاب کردم جیسون چون یه جورایی مثل ستاره سینما خوشقیافه است البته نه در حد دپ یا پیت در حد فرس یا جیسون آیزکس و جس درست با جیسون جور در میاد اونم با این جور در میاد این اسم برای یه زن مناسبه قشنگ و لطیف همون که اون هست اونا یه جفتن اونا با هم جفت و جورن میتونم بگم خوشبختن همون چیزی که من سعی کردم باشم اونا منو تام هستیم پنج سال قبل اونا چیزی هن که من از دست دادم چیزی که من میخواستم باشم اصر پیرنم به شکل آزاردندهی تنگه قفسه قفصهی سینمو فشار میاره قسمت های فرو رفته لک انداخته زیر بقلایی عرق کردم سرد و مرطوبه چشام و گلوم میخواره تو این غروب دلم گشت و گذار نمی‌خواد. میخوام برم خونه. لباسامو بکنم و برم زیر دوش. جایی که هیچ کس نتونه منو ببینه. به مردی که رو سندلی روبروم نشسته نگاه میکنم. تقریبا همسه نیم. وسط های دهی زندگی با موی تیره کنار شقیقه ها خاکستری پوست رنگ پریده. لباس رسمی پوشیده اما کمربند سندلی جلوش و ن یه مکبوک با زخامت نازک جلوش بازه کونتایب میکنه یه ساعت نقرهی با یه صفحه پهن رو مچ راستش بسته گرون به نظر میرسه مم. شاید از این ارزونا باشه لپشون میجوه شاید عصبیه شاید هم داره عمیقا فکر میکنه شاید داره یه ایمیل مهم به یه همکار توی یکی از اداره های نیویورک میفرسته یا یا اینکه با دقت داره لغات پیامی رو که میخواد به دوست دخترش بده تجزیه میکنه. یهو سرشو بالا میگیره و چشمون با هم تلاقی میکنه. نگاه زود گذرش از من میرسه به بطری کوچیک که شرابه روی میز جلوم. اون ورتر رو نگاه میکنه. چیزی تو حالت لب و لوچش هست که حس تنفر القا میکنه. به نظرش من ناخوشایند میام. من دختر درخواه اون نیستم. من چندان خوشایندش نیستم و هر حال جذاب نیستم. فقط این نیست که من اضافه وزن دارم یا اینکه صورتن به خاطر افراد در نوشیدن و کم بوده خواب پف کرده. انگار مردم میتونن این عیب به رو توی من ببینن اونا میتونن رو توی صورتم ببینن راهی که من با اون خودم و نگه میدارم روشی رو که من باها شرکتت میکنم یه شب هفته گذشته وقتی از اتاقم بیرون رفتم تا یه لیوان آب بردارم تصادفان شنیدم که کتی داره با دامن دوست پسرش. تو اتاق نشه من حرف میزنه توی راه رو وایسادم و گوش کردم کتی می گفت اون تنهاست من واقعا براش نگرانم این کمک نمیکنه تنهاییش پر بشه بعد گفت هیچکی تو محیط کارت نیست یا باشگاه راگبی و دیمین گفت برای ریچل مسخره نیست این حرف مطمئن نیستم کسی رو بشناسم که از جونش سیر شده باشه پنجشنبه یازده جولای دو صبح دارم چسب روی زخمم و از روی انگشتم بر نم گرفته بخاطر این اینکه امروز صبح لیوان قهفم و شستم چسب مرتوب و چست شده البته کسیف با که امروز شستمش نمیخوام برش دارم چون بریدگی عمیقه وقتی رسیدم خونه کتی بیرون بود. برای همین به خودم اجازه دادم و دو بطری شراب آوردم. اول یکیش رو سر کشیدم و بعد فکر کردم موقعیت خوبیه که تا بیرون برای خودم یه استک بوزم با چشنی پیاز سرخ شده و کنارش سالاد سبزی غذای خوب و سالم. وقتی که داشتم پیازار خورد میکردم نکه انگوشتم و بریدم. باید میرفتم هموم تا تمیزش کنم عوضش رفتم دراز کشیدم و پاک یادم شد. وقتی ان بیدار شدم ساعت حدود ده بود و من تونستم صدای حرف زدن ای کتی و دیمن رو بشنوم که دیمن داشت میگفت چقدر منزجر کننده است. و اینکه کسی مثل من نباید اینجا باشه. کتی اومد بالا تا منو ببینه. آروم در زد و تندی بازش کرد. سرش رو کچ کرد و ازم پرسید که خوبم؟ من معذرت خواستم. بدون اینکه مطمئن باشم برای چی دارم معذرت میخوام. اون گفت همه چی درست میشه اما واقعا فکر نمیکنید تمیزکاری لازمه؟ یک کمی خون روی تخته گوشت هست، اتاق بوی گوشت نپخته گرفته، استک هنوز روی پیشخونه و رنگش سیاه شده. دیمن حتی به من سلام هم نکرد. وقتی منو دید سرش رو تکون داد و رفت تو اتاق کتی. بعدش روتایی رفتن رو تخت تا من یادم بیاد که بطری دوم و سر نکشیدم پس بازش کردم. بعد نشستم روی مبل و تلویزیون تماشا کردم با صدای خیلی کم. اونقدر که اونا چیزی نشنبن. یادم نمیاد چی داشتم نگاه میکردم. اما احتمالا بعضی جاهاش احساس بی کسی تنهایی کردم. یا حتی خوشحالی یا, یا یه همچنین چیزایی چون میخواستم با یکی حرف بزنم. به تماسی چیزی نیاز داشتم که من رو بکنه. هیچ کس نبود که من بتونم بهش زنگ بزنم. جز تام. در تام نبود تا باش حرف بزنم. سیستم تماس گوشی میگه که من چهار بار بهش زنگ زدم. ساعت یازده و دو دقیقه، یازده و دوازده دقیقه، یازده و پنروچهار و دوازده و نه دقیقه. تو فاصله بین تماسات دو دوتا پیام فرستادم. شاید جوابم و داده، اما من یادم نمیاد باش حرف زده باشم. یادم اولین پیامی که فرستادم فقط ازش هستم میمزم زنگ بزنه. ممکنه. تو هر دوتا پیام اینو گفته باشم که خب خیلی هم بد نیست. قطار با لرزشی روی علامت قرمز متوقف میشه و من بالا رو نگاه میکنم. جس توی حیات نشست و یه فنجون قهوه میخوره. پاشو گذاشته روی میز و سرشو داده عقب و آفتاب میگیره. پشت سرش انگار میتونم یه سایه ببینم، یکی که داره را میره، جیسون. دوست دارم ببینمش. یه نظر اون صورت خوشقی رو ببینم من میخوام بیاد بیرون وایسه سه پشت سرش یه کاری بکنه مثلا رو سرش رو ببوسه بیرون نیومد و زن سرش رو پایین انداخت چیزی امروز تو وجودشه که به نظر من متفاوت میرسه اون سنگینتره وزنش من مردم میارم بیرون نزدیک اون اما قطار تکون میخوره و حوله میده جلو نه، هنوز هیچ نشونی از مرد نیست زن تنهاست و حالا بدون فکر یه متوجه میشم مستقیم زل زدم به خونه اونا و نمیتونم اونو ببینم درای کشوری فرانسوی چارتاق بازن نور ریخته تو آشپزخونه نمیدونم اینی که دارم میبینم واقعیه یا تصور منه یعنی زن اونجاست؟ داره زرف شویی؟ داره زرف میشوره؟ یعنی واقعا یه دختر کوچولو نشسته روی یکی از این صندلیای فنری بچه ها یا... یا اونجا روی میزاش بس خونه؟ چشم میبندم و میذارم تاریکی رشد کنه و گسترده بشه تا کوچکترین اجزا از یه احساس غمناک به چیز بدتری تبدیل بشن. یه خاطره. یه فلشبک. من ازش نخواستم تماسم و جواب بده. حالا یادم اومد؟ حالا یادم اومد من گریه کردم. بهش گفتم که هنوز دوستش دارم. که همیشه داشتم. لطفاً تام، خواهش می کنم. من نیاز دارم. بات حرف بزنم. دلم برای تنگ شده. نه نه نه نه نه نه نه نه. من باید اینو بپذیرم. چیزی نیست که بشه به زور ازش فرار کرد. من میخوام احساس بدی داشته باشم تمام روز میخوام بیام تو انباج قوی تر بد در، بد باز قوی تر. موج اندوه و شرم ساری توی حفره معدم هیچ میخوره صورتم گر میگیره چشما محکم باز و بسته میشن انگار میتونم همش رو ناپدید کنم و تمام روز به خودم میگم این بدترین چیز نیست هست این بدترین کاری که تو حالا کردم نیست این انگار اونجوری نیست که من بترسم کسی بفهمه یا بخوام تو خیابون جار بزنمش اینجوری نیست که من به شوهرم وقتی داریم کباب تابسونی درست میکنیم توهین کنم یا یا خیلی زشت سر همسر یکی از دوستاش داد بزنم اینجوری نیست که بعد از یه دعوا انگار که رفته باشم کلوپ گولف یه چوب بزرگ و توی راه روی اتاق خواب از غلافش در بیارم. مثل این نیست که من برای یه ناهار کاری سه ساعت وقت صرف کنم و وقتی برگردم دفتر ببینم که همه دارن نگاه میکنن بعد مارتین مالز منو بکشه کنار و بگه به نظرم تو باید بری خونه ریچل یه بار یه کتابی میخوندم یه کتابی که یه الکلی نوشته بود یه جایش نویسنده زن کتاب میگه که تلفنی کار میکرده مردا فقط توی رستوران اونم توی یکی از خیابونهای بزرگ و شلوخ لندن میدیدنش من کتاب رو می خونم و با خودم فکر می کنم. من اونقدران بد نیستم. این همون جایی که من متوقف میشم. چون من اینجوری نیستم. عصر تمام روز دارم به جس فکر می کنم. نمیتونم غیر از چیزی که امروز صبح دیدم رو چیز دیگه ای تمرکز کنم چی باعث شد فکر کنم چیزی اشتباهه شاید شاید نتونستم قیافش رو از اون فاصله ببینم اما احساس میکنم وقتی که داشتم بهش نگاه میکردم اون تنها بود یه چیزی بیشتر از تنها بیکس. شاید شایدم تنها بود شاید مرد جای دوری بود مثلا با پرواز رفته بود به کشور گرمسیری برای نجات جون آدما. حالا زن دلش براش تنگ شده بود و نگران بود خب ولی هرچند که اون باید بره خب البته که دلش براش تنگ میشه درست مثل من اون مهربون و قویه همونجوری که یه شوهر باید باشه اونا شریک زندگی همن میتونم اینا متوجه بشم میدونم اونا چه جوریات قدرت مرد که حافظه پرتوهای مهر اونه این به این معنی نیست که زن ضعیفه اون هم تو چیزهای دیگه قویه فرهیختگی اون جهشی داره که باعث میشه دهن مرد از حیرت باز بمونه اون میتونه یه مشکل عمده رو حل کنه کار با چکافی و تجزی و تحلیل کنه جوری این کار بکنه که به دیگران بگه سلام بر شما توی مهمونیا مرد اغلب دستشو میگیره حتی اگه سالها از ازدواجشون گذشته باشه اونها به همدیگه احترام میذارن روی همه زمین نمیزنن. امروز صبح احساس تویی بودن میکنم مست نیستم، سرد و سنگیم بعضی روزها به شدت احساس میکنم باید بنوشم بعضی روزها به شدت احساس میکنم که نمیتونم امروز فکر الکل دل انداخت اما هوشیاری توی قطار عصر یه چالشه مخصوصا حالا تو این گرما عرق مثل لای لایه نازک روی تمام پوستم نشسته توی خراشه کوچیک دهنم چشام میخواره ریمل موجه پخش چشام شده گوشی توی کیف هم وز میکنه وادره میکنه از جا بپرم دوتا دختر نشستن اون طرف واگانو به من نگاه میکنن بعدش یه لبخند موزیانه تحویل هم میدن نمیدونم راجع به من چی فکر میکنن اما میدونم هرچی چیز خوبی نیست همونطور که میخوام تلفن رو جواب بدم قلبم میکوبه به قفسه سینم. میدونم این نه خوبه نود شاید شاید کتی پشت خطه ممکن خیلی معدبانه از من بخواد یه نوشیدنی الکلی برای تجدید قوای امشب بگیرم یا شاید مادرمه تا بهم بگه که هفته آینده میاد لندن اون بیخیال اداره میشه و ما میتونیم برای ناهار بریم بیرون به صفحه گوشیم نگاه میکنم تامه فقط؟ یه ثانیه مکس می و بعد بد جواب بدم ریچل پنج سال می شناستمش. من هیچ وقت ریچل نبودم همیشه ریچ بعضی وقتام هم بهم هم گفت شلی و چون میدونست چقدر از این اسم متنفرم بهم نگاه میکرد و با دیدن من که از خشمون منقبض شده بودم می زد زیر خنده و از بین خنداش بریده یه چیزایی می منم یه جورایی وقتی می خندید بهش ملحق می شدم. خودمم. ریچل. صداش سنگینه. بی‌نهایت خسته. گوش تو باید از این کارات دست برداری باشه. من چیزی نمیگم. سرعت قطار کند میشه و ما تقریبا میرسیم به اون خونه. خونه قدیمی من. میخوام بهش بگم بیا بیرون. برو وایسا رو چمنا. بذار من ببینمت خواهش میکنم ریچل تو نمیتونی مثل همیشه به هم زنگ بزنی باید باید یک جوری آدت کنی ای که توی گلومه اونقدر سخته که مثل سنگریزه میمونه سابت و لچوچ نمیتونم آب دهنم قرد بدم نمیتونم حرف بزنم ریچل اونجایی میدونم دونم همه چی با تو خوب نبود و برات متاسفم واقعا متاسفم اما من نمیتونم بهت کمک کنم و این تماسای مکررت آننا رو به هم می ریزه، خب از این بیشتر نمیتونم بهت کمک کنم برو تو جلسات گروه درمانی ترک الکل شرکت کن لطفا این کارو بکن ریچل هر روز بعد از کارت برو یکی از این جلسات کثیف چسب زخم پلاستیکی رو از روی انگشتم کشیدم و بهش نگاه کردم گوشت زیرش چروک شده بود و خون گوشه ناخونم خشک شده ناخونش از دست راستم و تو مرکز بریدگی فشار دادم و احساس کردم زخم باز شد درد برنده و داغ بود نفسم حبس کردم خون از زخم چکید دخترای اون برای واگن داشتن بهم نگاه میکردن چهراشون راهشون